بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما والدین گرامی و قرآن آموزان عزیز آموزش فراس خانی سوره همد استاد برای آموزش بهتر مطالب قرآنی علاوه بر سازی آموزش از زبان بدن نیز استفاده می کند قرآن آموزان عزیز سعی کنید همانند استاد حرکت دستها را انجام دهید تا یادگیری بهتر داشته باشید همچنین برای یادگیری بهتر خوب است سوره همد را چند بار خوب گوش دهید دقت کنید هر چقدر قران آموز فیلم استاد را بیشتر گوش کند نکات دقیقتری را فرا گرفت